سلام و درود من فرزان فرامرزی هستم و شما شنونده پادکست خودمونی هستید دوستای خوبم حالتون چطوره ؟ هفته که گذشت چطور بود؟ امیدوارم که هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و آماده شنیدن یک قسمت دیگه از پادکست خودمونی باشید. برای این هفته مثل هفته های گذاشته یک موضوع رو انتخاب نکردم و در واقع موضوع خاصی رو برای این هفته در نظر نگرفتم. با به اتفاقاتی که در هفته گذاشته افتاده تصمیم گرفتم یک مقدار نگاهی داشته باشم به اتفاقات هفته گذاشته. شاید مهمترین خبری که هفته گذشته اتفاق افتاد ماجرای حمله تروریستی چهارشنبه هفته گذشته دوم دسامبر بود که خونین ترین حمله تروریستی در خاک آمریکا از 11 سپتامبر محسوب میشه خب در جریان این حمله تروریستی یک زن و مرد که زن و شوهر هم بودن به یک مرکز معلولین در بخش سان برناردینیو کالیفرنیا که در نزدیکی شهر لس آنجلس هست میرن و وارد جشن کریسمس اون محل میشن و شروع به تیراندازی میکنن که به مرگ 14 نفر و زخمی شدن 17 نفر منتهی میشه خب عاملان این حمله تروریستی چه کسانی بودند مدیر سازمان تحقیقات جنایی فدرال آمریکا FBI میگوید زوجی که عامل کشتار 14 نفر و زخمی شدن 21 نفر دیگر در سن برناردینیو کالیفرنیا بودند پیش از آن که با هم آشنا شوند به افراد کشیده شده بودند تشفیل مالک در ماه ژوئیه 2014 با ویزای نامزادی وارد آمریکا شد و با فاروق ازدواج کرد فاروق از پدر و مادر پاکستانی در آمریکا متولد شده بود. حمله اونها به مرکز بهزیستی انجام شد جایی که فاروق برای 5 سال اونجا کار می کرد. فاروق در ژوئیه 2014 به عربستان سعودی سفر کرده بود و دو هفته بعد با مالک که همسرش شده بود به آمریکا برمی‌گرده. پدر فاروق هم اخیراً در یک مصاحبه با یک روزنامه ایتالیایی گفته که پسرش با داعش گروه دولت اسلامی هم دردی میکرده و اشتغال خاطر زیادی به مسئله اسرائیل و فلسطینی ها داشته. خب این اطلاعاتی است که FBI تا این لحظه در اختیار روزنامه ها قرار داده و اطلاعاتی است که در واقع به صورت 100 درصد ازش مطمئن هستن. اما خب یک سری فرضیه هایی هم در این وسط وجود داره. مثل اینکه سرنخوای پیدا کردن که تشویین مالک که زن فارغ بوده، در شبکه های اجتماعی به داعش اظهار وفاداری کرده و این که میگن شاید اصلا وارد شدنش به عنوان همسر یک نقشه بوده و توضیح دادن که انتخاب همسر و استفاده از سایت های همسریابی در میان مسلمانان معتقد در آمریکا یک رویه عادی هست و اونها از این ویب ها استفاده میکنن تا همسری مومن و معتقد رو پیدا بکنم و تشویین شاید با یک نقشه قبلی به این وبسایت ها رفته در انتظار کسی نشسته که بتونه با اون طرح ازدواج بریزه و از طریق و ویزای نامزدی به آمریکا بیاد و بعد هم این حمله رو انجام بده. نکته جالبی که در این وسط وجود داره حالا من چند هفته گذشته رو در مورد پناهنده ها صحبت کردم و اینکه میخوان سخیری کنن در رابطه با پناهنده ها نکته جالب در مورد این ماجرا این هست که به قول یکی از این مجریای برنامه های تنگز میگفت که اومدن به آمریکا از طریق ویزا خیلی راحتتر از اومدن از طریق پناهندگی هست و واقعا هم راست میگفت من اون شب داشتم شبکه CNN رو نگاه میکردم و بنابرای اون گزارشی که داشت پخش میشد برای گرفتن ویزا تشمیل نیاز داشته که به سفارت بره به سفارت آمریکا بره و مساحبه ای رو مصاحبه ویزا رو انجام بده وقتی که برای مصاحبه داشته حاضر نمیشه در سفارت و مساحبه انجام نشده بوده و بر طبق مدارک سفارت آمریکا و به اصطلاح اس‌بی‌آی هیچ مدرکی هم در دست ندارن که آیا قرار مجددی برای مصاحبه ایشون صادر شده و آیا اصلا مصاحبه شده یا نه یعنی امکان داره آدم حتی مصاحبه نشده ویزا رو گرفته باشه که این خیلی جای تعجب داره حالا همه اینها دست به دست هم داد از اون طرف دونالد ترامپ که یکی از نامزدهای انتخابات آتی ریاست جمهوری هست طرحی رو داد و در طی یک سخنرانی اعلام کرد که باید اصلا جلوی ورود تمام ها رو به آمریکا بگیریم تا بتونیم دو بوقلن تزیه و تحلیل کنیم و فهم دنیا دست کیه که با خیلی های خیلی شدیدی از چه حزب خودش چه احزاب مخالف روبرو رو شد اما مجلس نمایندگان آمریکا طرحی رو تصویب کرده که بر اساس اون شهروندان 38 کشور که برای سفر به آمریکا نیازی به دریافت ویزا ندارند در صورت سفر به ایران، سوریه، عراق و سودان برای رفتن به آمریکا باید ویزا بگیرم. این تغییر میتونه برای شهروندان ایرانی الاصل کشورهای اروپایی هم تأثیر گذار باشه. بر اساس این تر شهروندان کشورهای دارای وضعیت لغو ویزا با آمریکا که بعد از 1 مارس 2011 به سوریه، عراق، ایران و سودان سفر کرده باشن نمیتونن بدون ویزا وارد آمریکا بشن. بنابر گزارش بی بی سی در این تر مستقیما از ایران نام برده نشده و بیشتر اینا تمرکزشون روی عراق و سوریه است. اما شامل کشورهایی میشه که از نظر دولت آمریکا حامی تروریست هستند و ایران هم در این لیست قرار داره. خب البته باید این رو هم اضافه کنم که بلژیک و فرانسه که بیشتر عاملان حملات اخیر پاریس شهروندان آنها بودند هم جز این برنامه هستند. و شهروندان بلژیکی و فرانسوی هم شامل گرفتن ویزا میشن و اگر به اون کشورهایی که گفتم ایران، عراق، سوریه و سودان سفر کرده باشن در 5 پنگ سال گذشته باید برای گرفتن ویزا اقدام بکنن خب متاسفانه سخبیری هایی که داره اعمال میشه حاصل وضعیتی هست که وضعیت شک و ترس بهش میگن استلاحا و در چنین وضعیتی قانون گذاران بعضی وقتا قوانون‌هایی رو می‌ذارن که در شرایط عادی هیچ وقت جامعه پذیرای این قوانون‌ها نیست. این قوانون‌ها اگر می‌خواستم ده سال گذشته بذارم، هیچکس حمایت نمی‌کرد. اما طرح فعلی با 407 رای در مقابل 19 رای تأیید شده. یعنی هر دو حزب آمریکا نمانیگان هر دو حزب آمریکا بیشتر از 80 درصدشون با چنین طرحی، موافقت کردند. ضمن اینکه سخنان دونالد ترامپ رو رد کردن و بهش اعتراض کردن هر دو حزب دموکرات و ریپبلیکن آمریکا هر دو حزب در تصدیق کردن این قانون با هم همراهی و هم دل شدن. یه نکتهی که برای من خیلی سؤالانگیز بود و خیلی هم غم من میتونم بگم اینکه این زوج یک دختر شیش ماهه هم داشتن که روزی که رحصه انجام این عملیات تروریستی بودن بچه رو پیش مادر شوهر میذارن و میگن که وقت دکتر دارن و میرن و این عملیات رو انجام میدن و بعد هم در تیراندازی با پلیس کشته میشن این زن و شوهر یک دختر شیش ماهه رو ول میکنن میرن و آدم میکشن من با خواهد بشن فکر میکردم این چه عقیدهیه چه دینیه چه باوریه چه مذهبیه که پدر و مادر رو مجبور میکنه برن آدم بکشن از بچه خودشون بچه شیش ماهی خودشون بگذرن زندگی اون بچه رو تباه بکنن برن و زندگی چند نفر دیگر رو هم بگیرن واقعا این برای من یه سوالی و دربته بعد سی خبر رو منتشر کرد که ظاهرن حدود 29000 هزار چند ماه قبل از این عمالیات یا چند روز قبل از این عملیات ظاهرن به حساب مرد شده. و مردن حدود 15000 هزار دلار شو به حساب مادر شیفت حتی اگر حالا همه این پول ها یا مثلا که داشتن میگفتن وام اینترنتی گرفته حالا به هر حال این پول اگر از طرف گروه های تروریستی بوده باشه یا اگر وام بوده باشه به حال تضمین آینده بچه نیست یعنی ۲۹ هزار دلار یا 15000 هزار دلار مبلغی نیست حتی خرج تحصیل بچه هم نمیشه و در واقع من مونده بودم و از خواهم سارا میکردم که این پدرمادر با خودشون چه فکری کردن و به نظر من این پدرمادر اول بچه خودشون کودک شش ماهه خودشون رو کشتن و بعد رفتن و جون چهارده نفره دیگر رو گرفتن از بحث ترور و تروریسم و این اتفاقاتی که در آمریکا چهارشنبه هفته گذشته به وقوع پیوست بیاین بیرون میخوام یه صحبتی بکنم در رابطه با محرومیت جوانان بهایی از حق تحصیل موضوعی که سالها و سالها و سالها, و سالها در رابطه باهاش صحبت شده و اگر جمهوری اسلامی بخواد به همین رویه محروم کردن دانشجوهای بهایی ادامه بده سالها و سالها و سالهای آینده اما در مورد صحبت خواهیم کرد مقاله خواهیم نوشت خبر محرومیت خواهیم خوند و و و و اما خبری من خوندم چند روز پیش که یک دانشجوی باهائی یک دانشجوی ممتاز باهائی به نام دلارام صادق زاده از راهی یافتن به مقطع کارشناسی ارشد من شده. بذار من این خبر رو به نقل از رادیو زمانه اون قسمتش که مهم هست رو برای شما بخونم مثل همیشه قسمتی از خبر و لینک به خبر در زیر این پادکست قابل مشاهده است میتونید برید و کامل خبر رو بخونید اما خبر از این قرار بود که دلارام صادقزاده صادق دانشجوی ممتاز مقطع کارشناسی دانشکده روانشناسی تربیتی بوده و به همین دلیل به طور مستقیم به کارشناسی ارشد فرستاده شده بود امسال اولین سالی بود که دانشجویان ممتاز دانشگاه شهید بهشتی باید در کنکور ارشد هم شرکت می‌کردن اما فقط مجاز شدن آنها برای ورود به مقطع کارشناسی ارشد کافی بود. دلارام صادقزاده هم در کنکور شرکت کرد و رتبه شش کنکور شد. محرومیت از تحصیل اما پایان کار دلارام صادقزاده نیست. او پیگیری ها را شروع می کند. به وزارت علوم، معاونت پژوهشی دانشکده، مدیر گروه، سازمان سنجش آموزش کشور و همه نهادهایی که به نوعی باید پاسخ خوب باشند سر میزند. رئیس دانشگاه شاید بهشتی او را به حضور نمیپذیرد و نامه های حخواهی او را بی پاسخ می گذارد. دانشکده روانشناسی و همکلاسی ها از اخراج او متأثرند. بعضی از همکلاسی های او نام به دکتر محمد مهدی تهرانچی ریاست دانشگاه شاید بهشتی می نویسند خب خبر خیلی خبر ناارحت کننده ای هست اینکه می بینیم یک دانشجوی که دانشجوی ممتاز بوده به دلیل مذهبی، از ادامه تحصیل در دانشگاه محروم میشه اما یک نکته اینجا داره و من میخواستم در مورد این نکته صحبت بکنم نکته که اینجا وجود داره این هست که خانم صادق زاده کارشناسی ارشد من شدن یعنی در همین جمهوری اسلامی ایشون تا مقطع لیسانس یا همون کارشناسی تحصیل کردند. اگر توجه داشته باشید همیشه در خبرهایی که جامعه بهایی منتشر میکنه در رابطه با محرومیت از تحصیل یا اخراج شدن دانشجو همیشه به این نکته اشاره میشه که هیچ دانشجوی بهایی در دانشگاه های ایران مشغول به تحصیل نیست. برای مثال بذارید من از سایت رادیو زمانه، سایت تریبون زمانه هیچ قسمت از مصاحبه ای رو بخونم که آقای یوهنا نجدی با خانم دادان علایی نماینده جامعه بهائی در سازمان ملل انجام داده. یوهنا نجدی در قسمتی از مصاحبه این سوال رو مطرح میکنه که جدیدترین آمار شما از تعداد دانشجوان بهایی محروم از تحصیل چیست؟ خانم علایی جواب میده آنقدر تعداد این دانشجویان زیاد است که ما آمار دقیقی نداریم. خیلی از جوانان بهائی بعد از قبولی در دانشگاه اجازه ثبت نام نمییابند. تنها میتوان گفت که شمار این جوانان قطعاً به صدها نفر میرسد که هر ساله از ادامه تحصیل در دانشگاه باز میمانند. یوهنان نجدی به عنوان سؤال تکمیلی میپرسه که آیا از زمان روی کار آمدن دولت آقای روحانی در ایران دانشجوی بهای محروم از تحصیلی موفق به بازگشت به دانشگاه شده است؟ خانم اعلایی خیر. حتی یک مورد هم چنین خبری به دست ما نرسیده است زمانی که خانم علایائی داشته این مسابقه را انجام میداده خانم دلارام صادقزاده دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی بود جمهوری اسلامی به دو دلیل این کار را انجام میده و در واقع موزیگری و سیاست جمهوری اسلامی است که از هر هزار نفری که در کنکور شرکت میکنند هزار نفر دانشجوی بهایی که در کنکور شرکت میکنند یکی دو نفر رو دستچین میکنه یکی دو نفر رو انتخاب میکنه و اونها رو میذاره که بیان دانشگاه برای مثال در همین وبسایت خودم من خبر رو برای اولین بار من منتشر کردم از اخراج آقای سمیم دوکوکی دانشجوی بهایی که پس از یک ترم تحصیل در رشته موسیقی دانشگاه آزاد باید بیزا در استان فارس در تاریخ ده همه اسفند ماه 93 به علت اعتقاد به دیانت بهایی اخراج شد خب ایشون در دانشگاه پذیرفته میشن یک تهم تحصیل میکنن و اخراج میشن موارد های اینچنینی بسیار داریم من از همون بههای شیراز خیلی آره میشناسم که دانشگاه قبول شدن چند تا رفتن حالا یا بعد اومدن امریکا یا اینکه به دلایل مختلف اخراج شدن یا درسشون رو تا آخر خوندن و در آخر که میخواستن مدرک لیسانسشون رو بگیرن یا فوق دیپلمشون رو بگیرن دانشگاه اون رو بهشون نداده و عذریتش میکنه این سیاست جمهوری اسلامی دو تا هدف داره یک وقتی که جامعه هایی میگه که کسی رو به دانشگاه راه نمیده و مانند خانم اعلیه که میگه خیر حتی یک نفر هم توی دانشگاه نیست جمهوری اسلامی این آمار رو رو میکنه و میگه نخه این صد نفر دارن در دانشگاه تحصیل میکنن یا این ده نفر دارن تحصیل میکنن سیاست کثیف دومی رو که جمهوری اسلامی اعمال میکنه اند تفرق افغانی بین بهایا است فکر کنم یه میگه خب چطوریه که من رو راه ندادن ولی فلانی درس خونه رفته لیسانسش گرفته مدرکشم گرفته الان داره میره فوق لیسانس میخواد بگیره و در واقع با یک تیر دو تا نشون داره میزن این کاملا مشخص است من نمیخوام از جمهوری اسلامی طرفداری کنم یا نمیخوام بگم مچه خانم علایی رو گرفتم که احترام خواستی براش قائل حساب یا نمیخوام کسی رو اینجا به چیزی متهم بکنه اما گلایه من و حرف من این هست. حرفی رو که خانم علایی به عنوان نماینده جامعه بهائی زده و تکذیب کرده و 100 درصد گفته خیر، هیچکس نداریم توی آنشگاه. در بهترین حالتش در بهترین حالتش به نظر من کمبود اطلاعات هست که ایشون اطلاع نداشته و نمیدونسته که بله ما الان چند تا دانشجو بهایی داریم یا حداقل یک نفر رو داریم که این خیلی بد هست برای کسی که نماینده جامعه بهائی هست و داره به عنوان نماینده جامعه بهائی مصاحبه میکنه به نظر من خیلی بد هست و عذر بدتر از گناه که بگی من نمیدونستم یا بدتر این حالتش میشه عدم صداقت جامعه به هایی که این خیلی بدتر است و من فکر نمی کنم این باشه در این مورد نمیخوام صحبت بکنم و نمیخوام متهم نکه نمیخوام صحبت بکنم نمیخوام کسی رو متهم بکنم و عدم صداقت یا خدایی نکرده دروغگویی چیزی که هست من معتقدم که جامعه بهائی به عنوان یک بهائی که وقتی اعتقاد داریم راستگو، کفگو، ما باید صادق باشیم و اگر میدونیم جوون بهائی به دانشگاه رفته وقتی که داریم آمار میدیم وقتی داریم مصاحبه میکنیم بگیم بله از تعدادی که شرکت کردن که آمار دقیقی هم حالمون نداریم بگیم 100 نفر همونجوری که خودشون هم گفتن 100 تا نفر از این 100 تا نفری که شرکت کردن 5 نفر 6 نفر 10 نفر پذیرفته شدن اما خب معلوم نیست که بتونن تکمیل بکنن و این آمارش به صورت شفاف ارائه بده و بعد جامعه‌های پیگیر اون 5 نفر پذیرفته شده باشه و هر وقت اخراج شدن سری جامعه‌های میتونه اعلام بکنه و ببینید اون 5 نفری هم که به دانشگاه راه پیدا کردن انان یکیشون ترم دوم اخراج شد یکیشون ترم سوم اخراج شد یکیشون مدرکشون رو نمیدن و من میگم باید جلوی مانور تبلیغاتی جمهوری اسلامی رو گرفت چون جمهور اسما وقتی اینو توی مجمع بهنام علی رو میکنه در واقع برای جامعه‌های هم بد میشه میگن چرا شما پس میگین کسی نیست وقتی که یه نفر دو نفر اصلا فر حسن یه نفر دو نفر نفر تو هزاران جوان بهایی از یک درصد هم کمتره ولی بالاخره جمهوری اسلامی روی این مانور میده و ما به عنوان جامعه بهایی باید جلوی این مانور تبلیغاتی جمهوری اسلامی رو بگیریم اینم بود که دوست داشتم بهش اشاره کنم چون در فیسبوک دیدم و اینکه دیدم یک سری از دوستان خب زیرش فقط ابراز تاسف کردن اینا ولی هیچ کس این نپرسید که چرا همیشه میگن هیچکی وارد نمیشه ولی ایشون رفته لیسانسش هم گرفته الان برای فوق لیسانس شروعش کرده گرفتم خیلی متاسفم خیلی خبر بدیه من میدونم میتونم درک بکنم که چه حسی داره ولی از اون طرف هم مسئولیت جامعه‌ای در رابطه با خبررسانی باید خیلی موازم دوستان عزیزم این بود پادکست این هفته ما در مورد دو تا موضوع خیلی متفاوت و مختلف صحبت کردم امیدوارم که هفته آینده هفته پیش رو هفته خوبی برای شما باشه سرشار از موفقیت تلاش تندرستی تا هفته آینده خدای هارو نگهدارت